در سلسله بیست بعضی از موارد خوب تا در حاضری و عدم اکانه یه لطن ها و مطمد در حبه ترزون فلا در این سه در منطق و در حصت به احسابشون بسنبو یا علت کامن یا محتضی هم یا لاحتضایی هم این مراتب مراتب منطقی یعنی اگر اولی نباشه منطقه میشه به دو بومی و ساید اصول باید شده به این اولی منطقیه بنابراین سه بومی ثابته و این صحیح نیست گریزی از یه که همون مرغابون نکنه، لابداتون پایله بیفزا بشه. فکر میکنی اگر ما شیم خوب زادی نداره، یعنی سه درصد طبیعی نیست. احتمالی که یک درصد طبیعی باشه هست. یعنی مختزلی باشه حتی یک درصد. میشه نافی فوق باشیم از اساس، لابداتش میگه حساب فوران. تجابی و افرولان قراریان داره به هیچ مقتدی خود به زبایتان به دومومه یعنی افتضاعی رو بشه و من از بسم الثالس لای الافعال به ها پی ها و از قبید که ، خوب ها اونها رو درد نمید الان ما از عقل رو بکردیم آب خوب یا بده نمیتونه بگیم حالا چرا اینا از معماهای های خلصف که چرا عرب درد نمیکن؟ عرب وقتی حرکت جوهری رو درد میکنه؟ اینها چرا در نمید اینها به صورت حل نشده چرا عقل اینها رو درد چون واقعیتی ما الان آب خوردن خوبه یا برد اول نمیتونه در ولی هستی رو وجود رو ماهیت رو حرکت جوهری رو به این چیزها رو درک می چرا بیلوشی درک درخ نمی اینها طلب شما تا تبلیم میشه. به قبید لفظتی لا یدر کل افرو به ملاحظت ها تا یعنی خود این افعال رو خودشون رو نگاه نه با ملاحظه جمهور خارجیه به ملاحظت ها فی انفضاین یعنی خود آفوردن بایدن برمیدین آفوردن برای چی بوده چاکندن برای چی بوده خودش بینفسه این نهست نشونه نشو بایدنش رو نمیتوندن و این ازن یعنی وقتی ثابت شد که تجربی مقتضی بومه در نظر عقل وقتی مقتضی باشه ارتفاع این رو متوقعه بر یک رافعیه رافعی باید بیاد تا این مقتضی رو نداره تاثیر کنه و حين ازن یعنی بنابراین این مبنای الان و يتتبعوه اتقاو و کوبی علن زمام را به یعنی دهو یعنی جهت تدارک او او چون شروع شود؟ مثل چی مثل چیزی که متضمن جامعه ان بعد یه مسئله دیگه هم هست داخل فرامجلس بهونه واقع تحقق بشه و اون این علیت تامه این اختیزا این لا از خود اومده ما چرا سر رو میگیم اختیزاییه تیز رو میگیم اختیزاییه درم رو میگیم علم تامه است و آب خوردن رو یا زر رو میگیم لا این هنوز واضح نشده و تحلیل نشده این علم ایس چیه مثال رو مثاله این مثال ها ذهن ما رو پر کرده وقتی میگن مختصی مثل, مثل کس قبول ولی آیا این اختزاب بخاطر خاطر چی میگن اختزاب یک یعنی یک فعلی مقتضی قه باشه به چه معناست؟ برای چیه اللفیسیه این هنوز معلوم نیست به کسی هم ننوشته مثل کسی که متضمن نجات نبی باشه روح یفته روح قویر مقتضیه قفه منتها یه میاد و اون قف رو بر میدار یا مانه از تأثیر میشه که نجات پیغمبر میشه. و منال معلوم این من المعلوم, ای المعلوم جواب از یک سوال مبتر سوال مبتر اینه که ما اگه قبول کنیم این مبنای اختزار و اینکه تجربی مختزی قبهه و مختزی تأثیرش از بین نمیره مگر با راقه که ایشون دارن دا اون و شما نوید در جواب سال خصول بدی ولی میدین مقتضیه و مقتضی که اصیرش هست مگر اینکه رافه بیار خب میگه این جواب از سال خصول نمیشه بخواد این سال خصول قائل هم به همینه سال هم میدونه که اگر مقتضی باشه رفتش فقط به راقه تأثیر مقتضی هست مگر اینکه این چیزی که سال خصول مانگرش باشه بنابراین این چه جوابیه از سال و من از معلوم کرد قتل مؤمن به وقت اندهو مؤمنون اون اصل سؤال مقدر اصلش را که داریم که و مختزی را به میخواد این سال اون هم وجود را دیگه مقتدی باشه نیاز به رافع داره و ما رافع داریم رافع چیه همون مستعد واقعیه ما خاستیم این شخص رو بکشیم و سر از کشتن کافر داره بود واقعیه بود ما خاستیم تجربه بکنیم حرام بکنیم سر از یک تواجه توسلی در بود ما خاستیم دروغ بگیم سر از نجات یک پیغمبری در بود اون مستعد واقعیه رافع صاحب خصول مدعی وجود رافع در مقام و اون رافع میاد تأثیل مختصی رو برمیداره بنابراین چیز زائدی نگفته حرف بیدردی هم نزده هر حرف شما مفاید بزنید یعنی انصاری، همون حرف ساحف هم داره میگه شیخ انصاری میگه نه اینطوری نیست بلی ساحف حسول انسان دقیقیه ولی دیگه دقیق تر از شیخ انصاری که نمیشه اهدی در دقت به شیخ انصاری نمیرسی شیخانصاری میگه اگر قائل بشیم به اقتضاع و قائل بشیم به اینکه تأثیر مقتضی ادامه داره مگر اینکه ای بیاد و قبول داریم که صاحبحصول مدعی وجود رافعه ولی قبول نداریم که این رافع در محل بحث موجود باشه یعنی ما راقه نداریم و مناغشه ما با بسوط صغرویه در وجود راقه چرا نداریم؟ بخاطر اینکه اگر این شخص بخواهیم به اون مسلحت واقعیه برسه اون مسلحت واقعیه باید برش معلوم باشه من اگر میدونستم پیغمبر باید میخوام نجات بدم مسلحت واقعیه داشت اگر میدونستم در... می که در زنی تجری دارم واجب توسطی انجام میدم، اون مسلحت واقعیه داشت اگر میدونستم در زمین این فعل تجربی یک واجبی رو دارم انجام میدم یا یک کار خوبی رو دارم انجام میدم مثل از واقعیه داشت و اون می اومد رافع اقتضای مقتضی میشد ولی من نمیدونم که سر در آوردم که این تجم متزمن انجا نبی بوده بعداً فهمیدم تجربی من متزمن فعل واجب توسلی بوده و چون التفاقی بهش نداشتن مسلحتی نداره مسلحت و اتفاقی که بهش نمیدن مسلحت مال موارد علم و اتفاقه و من از عنوان این فعل متجربه قافل بودن و قفلت از عنوان مصاوی و عدم مسلحت واقعی بنابراین اگر صاحب حضور میگه ما قائل به اقتضای میشیم و رافع نیاد اینو برمیداره رافع در کار نیست به خاطر این رافع مسترزم که من ملتفید باشم آلم باشم و مفضوط که عنوان این فعل متجربه برای شخص متجربی معلوم نیست وقتی معلوم نباشه مسترزم راقیه در کار نیست جوابه خودش دردارم در جواب دلیل لسارد گفته و من المعلوم و من المعلوم که نه اون یارف او مقتضی یا یارف او این خلاصش. و من المعلوم نه صاحب ای نداریم. ایشون میگه مقتضی گرافو میاد برداشته و من المعلوم که رافه نداریم. چرا نداریم به خاطر اینکه شما این شخص رو که نکوشتی نه خاطر اینکه مثلا پیغنبر بوده یا آدم خوبی بوده در نظر خودت معصیت کردی تجربی کردی وجهش عنوانش برای شما معلوم نبوده وقتی معلوم نباشه من صرف واقعی نداریم تا اینکه باید رافع اختیاری مختصی باشه رافع قبع نظرگی باشه حاله آره دیگه معلومان مرحله سلداری خارج میشه. علاکو الله این یک داره. میگه ما نمی‌تونیم بگیم منفعت واقعی خود که خود به میاد. مثلا واقعیه اتوماتیکی نیست. الیقاطی اگر شما بدونید چیکار داری میکنیم مصالح و مفاسد برش متراکم میشه. ولی اگر همینطوری باشه، مذهول دل باشه، اتوماتیک نه مقصدی نه مصلحتی متراکم نمیشه. عبدا یعنی شیخ با این حال منکر آثار وضعی شده یعنی میخواد بگه شما اگه بدونی شراب بخوری مست میشه اگه ندونی شراب بخوری بست نمیشه لازمشینه دیگه در این هر شیفنساری منکر آثار وضعی شده حالا اون چی جواب اما میگنم میدونم؟ بله؟ نه میگه رافه نداریم دیگه بزرگی که آافوم از این ودشته راه کدوم و ساعت موقع واقعی نداری مگه نمی این نمازه مگه نمی این دروغ من نجات بم من نمی دونستسم از من واجب توسلیه چی می دونستم وقتی نمی دونستم و چی م داشته باشه؟ و من المعلوم معلوم از نون اینم با م که راه اون کم این تمامش حالا تفصیلش. و من المعلوم انه ترک قتل المؤمن به وصف مؤمن مؤمنون واقعا بالمثال الذي ذكرهو صاحب الفصول چه یعنی ترک قتل مؤمن مثل فعل قتل مؤمن به وجود واقعیش نمیتونه متصل باز نخوف باشه چه ترکش و چه فعله که ما بکشیم چه نکشیم اینا به وجود واقعیش متصف به حسن و نمیشه لعی سمن الامور اللطیت به حسن و خوبه متصف نمیشه چرا؟ للجهده به انوانهی جاهده به انوانش هستیم ما نمیدونیم کشتن مؤمن تا بد باشه یا نکشتن مؤمنه تا خوب باشه به خیال اینکه تا رو نمیکشن. به خیال اینکه مثلا مؤمن رو دارم میکشم. پس جاهله به انوان باشیم اون مسئله اتباقیه رو نداریم وقتی نداریم راقی نیست بیاد قبع رو برداریم لجهنه به انوانهی خودوم انوان یعنی بکنهی نهی در مؤمنی از جاهل بودم اینکه این کشتن مؤمنه یا نکشتن مؤمنه از همه از به ان مضبوله انوان متصفه به قسم قب نمیشه محسنش چیه؟ محسنش نیکه از حال وضعی بدون ارتفاع مترتب نمیشه یعنی اگه بدون این شراب بخوری مست میشی چون مستی و سکر از آثار وضعیه اگه ندونی مست نمیشه محسن شیخ نمیشه. نمیشه حالا همین رو سای حصول و طرفدارانش ایراز بگیرن به مصنب بگنی این جواب میدین اینو خودش جواب داده شیفت جواب میدین و لذاه طرف این کلامه و چون فعلی که من انجام دادم در این تجربی چون فعلی که من در این تجربی انجام دادم مجهول الانوان بوده نمیدونستم درستم دارم میکنم واقعا معذورم و خود صورت وجودم کرده به لو که لفعلا دکان محضورم وزه از کجا اومده؟ وزه بخاطه جهر اومده کل جاهل محضور آیتون به آیات مشکل بلی درست نیست درست نیست کل جاهل معذور درست نیست کل مسئول معذور یعنی دقیقش اینه به خاطر همین کل جاهل معذور درست نیست در اواخر بیگه تفصیل دادم بین جاهل مقصر و جاهل قاسد به اون به خاطر همین مسئولیت برد امروز توزین ده روز رو حالا قشق با عالمه که کل جاهل معزود. اگر شمس جاهل باشه معذول و این شخص یاهید بوده نگه این کشتن مؤمنه یا نجات پیغمبره لذا معذوره اگه کار بدی هم میکند معذور و لذا یعنی به خاطر یک تر هلی که قبل مؤمن به حسن میشه به خاطر یک مجهور و للمانه اعتراف کرده صاحب فصول به این اگر این عبد مؤمنی رو به عمر مولان میکشت معذور بود در این قبل به خاطر یک معذوریتش با قبع تجربی جمع نمیشه اگر کسی قائل بشه به اینکه معذوره یعنی کارش روی بوده نه چون معذوره کاش از اینه که این قبهی نداره و لذا اعترفتی کلامهی و انهوله و تلهو کان معذوره و هیچ موقع معذوریت با قبه جمع میشه همین که گفتن معذوره یعنی اون قبهی نداره قبهش چرا پریده مفادگی که پیلش مجبور و لنوانه نمیدونی داره میکنه و از آ... و اضلم از فعل و الذيی تحققدر تجربه دیزمه ای مثل آ شددن مثل نجات پیغمبر مثل این مواجبب تی و ظلب میکن هازن فعل و خارجی از منتظر را به ممایت تذب به حسن و قه وقتی متیف به حسن حسقب نمیشه، و نمیشه به این کار خوبی بوده یا بدی بوده لم یو اصف فی رفع اقتضای مقتضی یه قدرتی نداره بیاد مانع اقتضای مقتضی بشه لم یو اصفی شه این تحصیل نداره یه کار بخاصیتی داره چون نه حسنی داره نه پس ساید رسول ادعا میکرد که اون حسن واقعی میاد این قبع ظاهری رو بر میداره این حس نداره یا قوی نداره لم یا از صرفی شیه یعنی لم یا از صرفی رفت اختضاء مختزی لم یا از صرفی اختضاء مای اختضاء یعنی اختضاء تجربی رو نمیتونه بردار. ما مای اختضاء قب تجربیه اختضاش کیه؟ همون حرمت همون استحقاق قم آیا این فعلی که تعلق پیدا کردن در خارج میتونه قربه بر داره نه میاست تاثیر نمی کنه تمام لو ی فی اقتضاء مایت از الحوض فی مال و قرزه امره و قد لکافرن فقط الا مؤمنا معتقدن کفر او همان که در رفع اقتضاء انقضام تاثیر نمی در رفع اختزای انقیاد هم تأثیلی نداره انقیاد فیمال و امره هو به قطعه کافر فقط ادم امنم محتمدن به قفره یعنی هرمون سهمه تجربی مثل انقیاد نه در تجری چیزی داریم بیاد قب برداره و نه در موارد انقیاد قومه واقعی داریم این بیاد ظاهری رو برداره از اون در قوم ظاهریش نیمونه تجربی و اون انقیاد در حسن ظاهریش میمونه ما واقعا چیزی نداریم چون فعل مجهول به انوانه فعل مذهول که منتظر به حسن غوب نمیشه معثل در وقت حسن غوب ظاهری نیست ما از این حالا میشه اون حرفها رو بزنیم خود ساست و میدونه مسلمت هم میدونه ولی بحثنه که قد مطوریت نیستی که از حیث کاشفیتش یعنی صرف حضور صور و بعد مطوریت نداره نه همشون همه شون همه کسی کردن در اینکه که از انامین تریریه یعنی مخصوش مهمه نه خودش از انامین تریریه است قد موضوعیت نداره به این نهولا اشتالتی مذهی منحهی سلح انقیاد لذا این شخصی که انقیاد کرده ولو در زن انقیاد حرامی مرتکب شده این شخص رو مدهشی و عدم مضاهمت حسن انقیاد به قبع فعد واقع بالخارج با اون قبع که واقع شد در زن انقیاد اینها فعاروز نداره مشکلی نداره لذا ما هیچ موقع به ظاهری با حسن ظاهری رو با مسابه مفاظت واقع نمی توییم تغییر بدیم به خاطر اونا از چیزی نیستن در واقع چیزی نیست اون که محفظ شده مضبول الانوان بوده نه حسنی داره نه بابیده. و دعوا حالا کسی ادعا کرد که این برخلاف همه فرمایشات علامون شما ولی گفتی اگر من علم به خوردن خم داشته باشم اصل برش مترتبه یع اگر این نداشته باشه همسور نیست و این انکار آثار وزیه برخلاف واقعیت و حقیقت زمان که خلاف همه اقوال حسی قبول نداریم با بیانده این داشته باشیم بینکه این شراب اخوری مزد میش. اون بحث در اثر وضعیه دیگه تأثیر در وقت اختضار مختصیله این اثر وضعیه اجازه توماتیک بیاد اون قبع رو برداره بحث در تاثیر اون حسن قبع باطنی در این قبع ظاهری بود یعنی این بحث در نظر وضعی بود اگر کسی بیاد اثر وضعی رو باشه این برخلاف اون آقایی کسی چه داشته باشه نداشته باشه شراب رو بخوره مست میشه و دع عند الفعل الذي يتاقه ويتعذري خارجا لا لم يتصف في نفسه بهسن ولا قبحين لكونه اگر کسی شما نیاز بود که ما زدیم الان لا لا يمتعه ان يؤثر في قوهما یک در از واقع شد آره متصف به حسن قب نمیشه به خاطر که مورد اتخاط من نبود فیل اختیاری من نبود اختیاری به معنای اتخاطی فیل اختیاری من نبود من اتفاقی بهش نداشتم حسن قب ندارم ولی مسئله و مفصد واقعیه که داره اون مسئله و مفصد واقعیه میادیمه برمیداره نه حسن قوه اعتباری که من توثیرش نداشتم و تحقیق پیدا نکم اون فل بی فی نفسه مدصده داره این نفس مدصده داره اون امور نفس امریه، نه امور اعتباریه که منوط به علم و اعتفاظ من بوده همون مسئله مفاسد واقعیه اون بیا تحصیل میزاره و خوبت از وزیده بر میداره لیکن نقوده و جمتنه. یعنی محال نیست یعنی هشت سره اون مصالح و واقعی واقعیه فیل فی رفت قبه مایت تزرگو فی قبه مایت به فی علیت یعنی فی رفت قبه تجری یه قبش برداره بنابراین ما قبول می‌کنیم که اون فعل چون مجبور در بوده حسن ای نداره ولی دارای مسئله مقصد واقعی که هست همون مسئله مقصد واقعی بیارنه برداره الا ان نبول به مقاله سرزواری مگر این که قاید بشین به حرف سرزواری در تبریل دلیل چاران برخوره تجرب الا ان نبول به مقاله سرزواری مقاله سرزواری چی بود؟ به عدم مدخلیت الامور امور خارجیت عن قدرت به استحقاب مده بزن بگیم امور بیر اختیاری مؤثر در چیزی نمیتونه باشه تأثیر ما اختیاری اختیاریه و مصادفه و عدم مصادفت رو سبزواری گفت که اینها نمیتونن معصل باشن ملاک در غبه نمیتونه باشه چون اگر غبه و به مسادفت و عدم مصادفت بکنیم اناتی یک شریع و یک عبقه اختیاری و اون نمیشه الا ان نقول به مقالت سبزواری در دلیل چهارم که دلیل عقلی بود بر غبه نجربیم یعنی به عدم مدخلیت امور خارجت همین قدره یعنی همون مصادفت و عدم مصادفتی اونجا گفتیم خارج از قدرت ما بود ما داشتیم شراب میخوردیم سر از سرکه در خب این عدم مصادفت در اختیار من نبود چیزی که من میخواستم شراب بود چیزی که در اومده سرکه هست بنابراین نمیشه بگه اونها در اختیار من بوده از امور غیر اختیاری حساب میشه با اونجا که اقاب رو و سواب رو نمیشه به امور غیر اختیاری بکنید یزم که قاعدی بشین به گزینه اول یعنی هر دو مستحیم اقاب باشه و اگر تفسیر قاعدی بشین بین شارب بلخم بگیم اقاب میشه و شارب بلخم بگیم اقاب نمیشه یزم اناسه اقاب به یک غیر اختیار اینو سرزواری میگوند پیشون بگه مگر این که قاید بشیم به مقاری سمزرانی در راید چارم یعنی به عدم مدخلیت امور خارجتن قدرته استحقاق لقاب و زن موضمت و و خوب محل رو نزنه. یعنی عدم و مدخلیت امور و غیر اختیاری در استحقاق و زن محل نزنه که این مدخلیت نداشته باشه نه امور از قدرت اختیار میدونه معسل در مدخ و زن باشه. و هوای رو و امور خارج از اختیار انسان میتونه موثر باشه در مرتضی. پس من یعنی محل من، یعنی ممنوعه کسی بگه امور خارج از اختیار نمیتونه مؤثر باشه نه یقینا میتونه مؤثر باشه. و هوای مهرب و نزرین، یعنی مهرب اشتاله ولی یعنی ممنوع اشتالش کجا؟ ممنوعه. ما بیایم بگیم امور خارج از قدرت هیچ تاثیری نداره چرا نداریم الان مصادقت من به این بردن خم دخالت نداره در اینکه انسان مست بشه چرا باید که از اختیار انسان انسان مست میشه پس امور خارج از اختیار میتونه دقیل در یک امری باشه میتونه معصد باشه اینطور نیست که بگیم امور خارج از قدرت هیچ تأثیری نداره لذا آثار وضعی مترفته آثار وضعی وقتی آثار وضعی متلطق باشه ما در ضمن فعل متذرامه اگر به یک مسئلات واقعیه برسیم اون مسئلات واقعیه میاد قوم زاهری تذرگیو برمیده بنابراین برگشته به طرف سالفه سوی نه نبیه اون اختیاریات در تکالیفه این اثر وضعیه مستی اثر وضعی شراب دیگه لیکن تکیب نداره چون اگه میدونستی خوب یه حرام انجام بازی ولی چون نمیدونید بس میشه بایی حرام انجام بازید از سال وضعی رفتی خیار نده. و علیه یوم که نمون رازی اینا تشکیش در تعبیرات نباید اینطور طور باشه نباید باشه در سبود در منطقه مزفر دیدید در تعریف عقلعملی بعد ما یوم در فائلون یا ما عین معرفت اینا هر دو رو غلط کاربرد میشه نه اینا تعریفاتی مثلا قاصرن خیلی دقیق باشون تعریف می ما در مذهب زن اوغلایی داریم بحث می کنیم یا غاب و ثواب عقلی و واقعی داریم بحث می کنیم اینا فقط در تعریفات اینا خیلی به اجرا و دییده مغزش خور میش از اینکه به در نمیخونه اصل مطلب رو آیا امور غیر اختیاری میتونه مؤثر باشه یا نمیتونه مؤثر باشه و این مال کلی بحث های آثار وی هستند یا نیستن میشه بای به اثر وی بشین یا نه آثار ودی هم تابع قصد انسان تابع علم انسان تابع انارتفات انسانه افتلا علاق میزار چون اثر تکیی که یقینا منوط به اختیار و علم و انتفاات ولی آیا آثار وزیه میکنه؟ محل بحثه کسی نمیدونست این زن در نس و بایش کرده آیا از سر وزیر رو داره؟ یعنی حرمت عبدی رو میاره؟ یا نمیاره؟ اختلافی این بحث آنها میخواد بگه حالا بیایم بگیم این تعبیرشون استعمار و اقاب باید میگونه نه مدخوزن؟ اینها اصول در تعبیرات کاری من چیز نه اونا روی که درست نگرده از اصسباب ظاهری رفته به باطن ما بحثیم الان داخل باطنه ما در نفس الان داریم بحث می کنیم در مسائل مفاهت واقعی داریم بحث و الا کو مهندری ما نمی تونیم انکارش کنیم نمی تونیم اثباتش کنیم اون چیزی که ازش خارج شده الان در مسال مسائل مفاهیم واقعی اونا یعنی از این کو مهندری وارد راه یا می تونه صاحب کسون میکرد نیشونه و علیه دیدیم که نمکنه منع دلیل اقلی سابق فی تجربی خب ایشون میگه ما آمدیم گفتیم که امور خارج از اختیار امور خارج از اختیار نمیتونه مؤثر باشه بعدا اومدیم بعد اینه مناقشه کردیم گفتیم میتونه م... محصر باشه و خبه محل و نظر این یعنی امور خارج از اختیار میتونه موثر باشه به این جمعه تحصیل رو داره و کسی نمیتونه بگه مصنف اینو قبول نداره به خاطر که مصنف در وقت حرف سبزواری گفت امور خارج از اختیار میتونه موثر باشه کسی نمیتونه از رو کنه چون خود مصنف قائل به این حرف هست و علیه یعنی عللمنه یعنی بر این قدم استحاله تأثیر امور خیل اختیاری که امور اختیاری میتونن موثر باشن یعنی بر همین من ای ما گفتیم این من و شیخنساله قبول داره یا نداره میخواد دیگه قبول داره شیخنسالی هم میگون امور خیل اختیاری میتونن معصر باشن ما هم همین حرف زدیم گفتیم مثلا و مفاظت با میاد قبه نظری رو برمیداره شیخنساری هم اینو قبول داره در رفت دلیل چهارم یعنی حرف زبزه باری قایل شد به این جمهور غیر اختیاری در عدم اقابه عدم المصادفه قیل اختیاری بود ولی گفت عدم المصادفه موجب عدم العقابه بنابراین تأثیر رو قبول کرد شیخنساری یک نحو تأثیر امور قیل اختیاری رو قبول کرده بنابراین من صاحب واشی خانساری اختلاق تا اونجا جناده. <تصفيق> گفت اقابش باید برگرده به اختیار ولی عدم الاقاب لازم نیست به اختیار برگرده تفصیل داد دیگه کسی رو بخوای اقاب بکنیم باید یک ها اختیاری کرده باشه ولی من میخوام کسی به اقاب نکنم عدم الاقاب لازم نیست به اخر برگرده یک امر اختیاری میتونه به یک امر خیل اختیاری هم برگرده اینو گفت تفسیرش اینو خب در ممارد ادم علیقاب مصادفه خبش خیلی نداره ما ماشاد کرده به ادلاع گفتیم که اگه سریعه به بگه باید بگه معلومان علیقاب از نداره نه توقف نیست توقف نیست اونا اونهایی که موعدش بودن، اونایی که تو درسش بودن، خود اونها تضییق کردن، بل خوب و معلوم. معلوم و عدم، یعنی بازه تضییق کردن هستن. ولی گفتن متند به خاطر مماشات، گفت خوبش غیر معلوم. معلوم. و اعده معلوماتن، خوب میاد. تئوندی در رد دلیل چارم گفت که میشه یک امری، معلوم تل یک امر اختیاری باشه و امر اختیاری متأثر باشه، به خاطر اینکه گفت در واقع او علت عدم چون مصادف نشده اقابی نداری بیش خوبی هم نداره ما یک امر غیر اختیاری رو منعود به یک امر اینطوری طوری بکنیم ایچه اشکالی نداره عدم و اقاب به عدم و مصادفه و مصادفه امر غیر اختیاری مؤثر در وقت اقابی ایچه اشکالی نداره و جون که ابتنا و جواب مصنف ام مقابلت سبزه همقال مصنف هوناش بان ان امر غیر اختیاری موثر در عدم لقاب به خاطر اینکه در اون جواب مصنف قائل شد به اینکه امر غیر اختیاری موثر در عدم عقابه این عبارت رو تغییر میدم به خاطر سهولت در مباحثه دوباره میخونم میخواهم بنویسم و علی هیوم که ادعاو جواب مصنف عن محقق صدر زواری حیث و افاد المصنف خناه به ان الامرقیل اختیاری معصران بیادا عدم بگه نه روشت نه دوباره بریم <تصفح> چون اینا تعبیراتش مغلبه بعده ایجا که افتناه جواب جواب المصنف علی المحقق سرزواری یعنی دلید چار. حیث و افاد که به ان الامور قیل اختیاریه مؤسل یعنی هم به قیل در بود؟ در عدم اقاب حالا امانتیشون داره و که امکن من اتدلیل الاخلی سابقه پی خوب تجدید این واضحه میشه ازا رو باید خودتون در بیارید به تحبیلات باید اضافه بشه به برای مباحثات خودتون یعنی به هر صفحه یک تا متن фото اضافه کنید تا معلوم باشه که آیا رو فهمیدید یا نه فهمیدید. اگه بله بخواید ما رو همینطوری تعظیمش کنید به آخرش محتاج می‌شم به شرح فارسی. آدم باید متن رو نگاه کرد. به صفحه ای که نگاه کردی بفهمی چی مخواهنید. خیلی هنره. من تو اساتیده خودم یکی دو نفر رو دیدم اینطوری بودن. یعنی در پول این عمر طلبگی یکی دو نفر از اساتید به عبارت که نگاه میکرد میفهمید چ می یکی که ساده مطول من بود آای فشارکی تا نگاه میکرد مفهمدن می اشال چی میخواد بگه جواب چی بگه اونجایی هم که از بیرون میگفت مترو نمیخوند ان نمی هم که از بیرون نمیگفت یعن نهایت تسلف ولی حالا ا بام دونه دونه رو بخواد بم نه علیهه یمکنو ابتناع جواب مصنف از دلیل سبزواری مکه چی جواب داده بود ای افاده و افاد اونا که به انلام و غال اختیاری موثر رو بیادمده. برانه هر سال خصول رو خودشون قبل زده. مصنف میگه شما خیلی خیلی زلم اینطور نیست. ما این حرفها رو قبلا نندا. و دهوا منیداف و انصاح به خصول مصوعه اومدن در دفاع سال خصول این احتععاال مطرح کردن و گفتن که من این حرفا رو زدم این دعوا ممنوعه. دعوا چی بود؟ دعوا این بود که حسن خب واقعا نداریم بیا خب به و ورداره ولی مصلحت موقعیه داری این وارد برمیداره میگه ما این حرفها رو از کجا داری میزنی میگه خودت هم زده بودی خودت هم در جواب سبزواری دختی عمله اختیاری میتونه موثر باشه ما از خودت یاد گرفتیم میگی این حرفها نیست این ادعاها مکتوع به امروز دو تا جواب داره. جواب اول اینه مزاح فن القدرالجوهری بین من احنا فیه و بین متقدم منو. فی جواب مقاولت صرداوندی. بینی این بس که سخت زد داره میگه بینی اون حرفی که من زدم خیلی کرد. اونجا هجی من اومدن گفتم اینطوریه یعنی مبنای دلیل چهارم رو گفتم باطل مبناش متوقف بر عدم مقتضی اقاب بود گفتم برای اقاب شخص غیر مصادق مقتضی نداریم ما برای اقاب شخص غیر مصادق مقتضی نداریم من ادعای عدم مقتظی کرده بودم گفتم مقتضی اقاب نداره شخصی که شراب خورده خب مقتضی اقاب براش است کسی که آب فرده مقتضی اقاب نداری ادم مصادفت رو با ادم اقاب قرینش کردیم. ادعای من مبتنی بر ادم اقاب بود حق سال بزور اتعای مقتضی و موجود مانه بنابراین فرق هریه ادعای من ادم اقاب بود از نداره اقاب ایشون میگه نه اعقاب اقتدار داره ولی راقم اومده چون حرف من در اون مقام این بود که مختاری نداریم من نفسی کردم. و نفی اقتدار گردم و مان او یک شی علم اینا اون بنویسن آیات من آیات مشهوده من اونجا گفته بودم که مختاری نداریم ادعای چیزی نکرده بودم چیزی رو ادعا کنم باید اثبات رو. من اونجا ادعای چیزی رو نکردم من اونتا گفتم ما مختزی مانع بودم مانع اقاب عدم غیر مصادق بودم و مانع و یکی مانه هم من کسی که مانعه همون من کافی همین که من ادعای من کردم کافیه دیگه دلیل نمیخواد از من بپرسی المانع یکی حلمن من من کافی بود و چیزی لازم نبود اثبات کنم بخواد که قابل عدم مختزی بودم ولی ثوار میگه تجربی محتوی قغه مسلغه واقعی رافعشه اون مدعی دو چیز اثباتش کنه و نمیتونه اثبات کنه بنابراین مسئله قبل مصنع مرتبط به مقام گهغ بود مسئله ثوار مرتبط به مقام رفع اون میگه رافع داریم ما قبلا گفتیم داخل داریم کسی که قائل به دافعه باشه مثل انصاری لازم نیست از من ملتظم به باشه مثل ساکسور پس فرق دو مقام فرق جوهریه مضافنه در فرق بین ما نحنفی و بین ما در من الدلیل که خسم ما که بود و اونجا سبزواری بود اونجا ادعا میکرد که مختزی داریم ما گفتیم مختزی نداریم پس ما مانع بودیم ولی و یک تیر حالا این رو این تحبیر باقایی هاشیه که داوشون به برای این که تو مباحثات اشتباهی نشه بینما تفضل من در این نفیر یه حاشیه به نمیسید و این نرخص در سرزواری در ممان سرزواری بود گیده در هر بسیه دشمنی برای شکنساری بیدم شد و این نرخصی فانایت دایی آقای باید خیلی فیض باشن خیلی ما در سال خارج فارسی می رفتیم آنم عربی میکردن می نوشن بعدا می خواستن نمی بلد داری یه دار ازش پیدا نمی یعنی فارسی بشنه عربی بلیس. ولی الان ما عربی هم میگیم انجام این که جان باید ترمین هم ترکنه باید ترمین بشن فینالخص فانایت معتقده هراما لاستحقاق الاقاب و عدم مانئیت عدم المصادفته منه و عدم مانئیت عدم المصادفته منه بهذا البرهان الذي اقامه الخست يكفي في نقضهی احتمال و مانعیت احتمال مانعیت بدیم کافیه و اون سبزمانه باید استاد از بیرون هم گفتم که ما مانع بودیم ما قاعده بردان مختصی بودیم ولی مانعو یکی دیر من یعنی دو تا بیان من اینجا گفتم ولی خصوص و عمل من خصوص فقط ال این و که در حسن واقعی مانعن و علیه اثبات و مانعیت ماه و خارجان علیه خود اثبات کنه مانعیت این همه که از صدرته ولا یک فیل احتمال احتمال کافی نیست شخص مدهی باید اثبات کنه ولی شخص مانکر و مانع یک فیل من لذا در باقزان همینجور میگن مدعی باید اثبات کنه ولی منکر با قسم قولش قضیه بوده چون قضیه معنی است اون میگه من طلب دارم اثباتش کنم من میگه به بدهکار نیستم با قسم قول من مقدم میشه به قضیه ای نداره اگه در تعریف مدعی مرومای خویی میگه مدعی به شخصی میگن که معونه اثبات برگردنش هر در دادگاه به ارتكازات و قلائی مجبور و مسئول به اثبات باشه بهش میگن و هر کسی مسئول به اثباتی مطلبی نباشی بهش میگن ممکن. چون تا تعریف داره یکی از تعریف هایی مضافنه در فرق الجو و بین ما نحن و و بین ما من منت دلیده بودید. پس این بین الان و بین قبل فرق من قبلا گفته بودم عمل غیر اختیاری مؤثر در عدم مصادفت حرف من موافق با حرفه اینجای ساقط النیز به خاطر اونجا من ادعای عدم اختضا کرده بودن. من مانه بودن و المانه یک فیلم. بعد ایشون اینج مدعی مقتضی و مستعی وجود رافع هر ذره باید اثبات کنه. حالا این معضل حالا یه مشکل ابهامی هم بمونه برای این آقایون مراجعه کنید به شروع و این چی میخواد بگه. البته این بعد از این که همه اونهایی که میخوان بیان کلاس، واسه نقش همه این نهارو. باید هم باعث کرده باشند، هم مطالبه کرده باشن, کرده باشن. چیزی در کلاس به علم به اضافه نشه مگر چیزی که اون مدرس داره میگه و الله همه اینها رو باید شما فول فول باشی اگر کسی مخواد اینها ترجمه کنه یا محضر زمیر پیدا کنه یا سهرات کبرا برای بچینه ممل احوال شما باشه یعنی واقعش باید اینطور باشه حالا نیست لعله على یک مرقوعتون به امرین یکیش رو گفتیم دومی به ان العقل مستقبل دون به قوه تجری مثال دوم اینه که بعد از اعتراف صاحب فتو به اینکه ترک قتل مؤمن متصف به حسن قونه نمیشه به خاطر مجهول الایمان بودن خب شی مجهول الایمان چطوری میتونه رافع قونه تجری باشه با اینکه مانع از به تجری از نظر عقلی حسست فعل واقعیه و مفیی هم از بول دبان م دبان که نمیتونونه مانع و افه با باشه این الان دی وقت نیست خسته میشن در ادامه مرک که دیش داشتیم میگفتیم برای وضوحش ما گفتیم که ما هر کجا قع و نمیتونیم میت بدونیم کسی به هر تی رسید بگه من این کار انجام بدم و محظورم. این حرف رو میتونیم بزنیم اینها رو به صورت جزوه نوشتم جزوه شماره نخورده ولی هست و صفحه هست از اول وقت اینها رو ما این تکسیه کنن ولی محسنش من از بیرون بگم قسم نهیس و کاشف نمیتونه جمع باشه چرا؟ به خاطر از اناوین بعد از اناوین طریقی خودش موضوعیت نداره مکتوم به موضوعیت داره وقتی مکتوم به موضوعیت داره محركیت و طریقیت قطع کن اون مهمه هر قطعی محرک انسان باشه به مقصود خوچیت داره هر قطعی محرک نباشه و نداره در جازه های خودمون سفیل 541 مراجعه کنید بحث مقصودی در رابطه با اینکه محرکیت واسطه در عبوض خوچیت بر قطعه یعنی موضوع واقعی بر هجیت هر شی محرک اون شی محرک میخا زهن معتبر باشه میخوا زهن ضعیف باشه میخواد وهم باشه میخوا احتمال ضعیف باشه میخواد شک باشه میخواد یقین باشه میخواد قطع باشه هر کدومش باشه هر چیزی محرکیت داشته باشه حجیت محرک یعنی چی محرکیت خوب آان دقت نم به دوتا مطلب محک انسان اشیاء خارجی هم به وجودات علمی نه به وجودات خارجی اشیاء خارجی محرک انسان به وجودات علمیششون من اگه علم داشته باشم تو این راه مثلا درنده هست دیگه نمیام. نه که خود درنده خارجی محرک من باشه. نه وجود علمیش علم داشته باشن. من اگر علم داشته باشم به اینکه هم میرم دنبالا علم داشته باشم به اینکه فلان چیز هست دنبالش میرم اشیاء خارجی به وجودات علمیشون محرک انسانند خاطر اشیاء با وجودات علمی مصانخ نفس انسانند این یک مطلب مطلب دومی که حقیقیت و محرکیت در مقابل کاشفیت کاشفیت یکم رضاقی ولی محضرکیت در دبال اونه طریقیت رو مراتب کاشفیت نمیدونیم کمان که مشهورم نمیدونم ولو در تحبیرات مسامه میشه رضاق شهیم سر داره که محضرکیت حدیت تکمینیت یعنی یکی از حدیت ها حدیت های تکمینیت یعنی هر کسی علم به چیزی پیدا بکنه تکمینن به طرفش میده تکمینن به طرفش مید این محرکیت محرکیت یعنی چی؟ ما من شأن یعنی چی؟ ما من شأن یعنی هر چیزی که شأن یعنی چی؟ در من داشته باشه چی؟ ما شنییت لازم یعنی چی؟ ما من ما نسبت به یعنی و نواهی من شأن یعنی چی؟ داره من شأن یعنی بنابراین این که خودش موضوعیت نداره وقتی خودش موضوعیت نداره به این معنا که ملاکی در حقیقت کاشفیات نیست ملاک در حقیقت همون محرکیته و یک جمله فارسی تو ذهن بمونه یک جمله روانشناسی فلسفی ارفانی، اصولی فقهی هرچی حساب بکنیم تا معذوری تا مسئولی معزوری. یعنی عذر متوقف بر مسئولیت هر کسی ما به کل جاهل معذور بگی این حرفها چیه؟ انسان تا مسئول معذور اگه مسئولیت رو بندازه کنار معذور نیستی قاتل رفع مسئولیت کرده قاتل چرا قال چرا قاتله عملیت به قاتل امله قساص میشه قاتلی رفع مسئولیت کرده یعنی عملش غیر مسئولانه است عمل غیر مسئولانه عضف حسافنه میشه تا مسئولی معظوری کل مسئولی معذور اگر جاهل میگن معظوره به خاطر اینکه اگه مسئول باشه در چه موارد مسئوله؟ در موارد قصول جاهل فاصر مسئول، ولی جاهل مقصر معذور نیست میخوایم مسئولیت شناسی نکرده از من قطع پیدا کردم به اینکه این, این شخص باید بکشم میتونم بکشم اولا به خاطر اینکه کشتن یک انسان عمل دیگه مسئولانه است آیا من میتونم به هر قطعی عمل بکنم نه نو ها قبول نمیکنم محرکیت نداره پس ملاک اینه که انسان در مقام عمل با روح مسئولیت عمل بکنه معذوره بدون روح مسئولیت عمل بکنه معذور نیست حالا در تعبیرات و صوری این ها نیومده به هم شده که احده من نیست مهم اینه که من چیزی که بهش اعتباط دارم قبلا هم گفتم و تو جزوه الان نوشتم این که هر شخصی در مقام عمل با مسئولیت عمل بکنه یعنی پاسخگو باشه معذور ابن مودجی میگه در عملش پاسخگو هست معذور اگه پاسخگو نیست معذور نیست و یقینا این اشخاص پاسخگو نیستند عملشون از نظر نداره لذا شخصی معذور از نظر فقهی از نظر فلسفی از نظر کلامی که مسئولیت هم داشته باشه لذا خود کییت و, و شهیست تصدیه کرده به منعزوریت و معزوریت معزوریت یعنی همون معزوریت منعزوریت رو معنا کردیم به مسئولیت یعنی دقیقترین ایخترین واجب برای اینکه شما تا آخرش بدونید ابهامات ذهنی رو ظاهر کنید و الله ابهامات میمونه این یه نکته حالا باز ادامه داره فرصت نیست فرض شما. گس من محرکه است من بند داشته باش که انجام بده. قسم ام این تصاورات رو می داره جهت یه راهنمایی. قسم است به یقین واهی عمل بکنه معذور می شه در قبله. بالاخره داره نسبت به خودش. اگه داره اگه نه محرکیت شری معنا کرده این محرک باشه یعنی نوع مردون این موغزمار رو قبول می‌کنه. آره، دعوه‌م داره. ادعای اینا رو تو شب نوشتهن داره. ما دعوه‌م داره. ببینم واش بگم؟ اونم یه چیز می‌کنه. هر چیزی رو با زمینه با تو. بابا شک باش. ولوس شک. شکی قبلش. مرام قفل نشه؟ آره. آره. من دنیام. حق نداره. شک کن بهتره. بعد هم هر مورد معتبره. اون‌ها نگفتن، ما خودمون اطلاعات اوردیه بیشتر اول ویدیو میشه